سلام جناب آی بیگدلید، شما آخرین نفری هستی که من تو روز تولد نوین نالماس این ویس آورات میگیرم امیدوارم که در مسیر پیشرفت و رشد در نوبین الماس همراهی شما رو ما داشته باشیم خصوصیت اخلاق شما و تلاش شما همیشه قابل ستایش بوده برنده امیدوارم که در تمام مراحل ابتدا زندگی و بعد کاری موفق و پیروز باشید